بسم الله برام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره خدای را همه چیزهایی که در آسمان ها اند و در زمین به پاکی یاد می کنند و او صاحب قدرت منعی و صاحب حکمت ای مؤمنان چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمی کنید؟ نزد خداوند خشم تر است که چیزی را که انجام نمی دهید بگوید بیگمان خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او صفکشان مقاتله می کنند که گویی همچون بنای اند یک پارچه شو هم بسته و به یاد آور وقت را که موسا به قومش گفت ای قوم من چرا مرا ازیت می کنید در حالی که خوب می دانید که من به سوی شما فرستاده خدا هستم پس چون از حق منحرف شدند خداوند دلهایشان را منحرف ساخت و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کنن. و یاد آور وقتی را که ایسا و پسر مریم گفت ایبنی اسرائیل بگمان من فرستاده خدا سوی شما هستم حقانیت آنچه را پیش از من از تورات نازل شده تصدیق می و مجدگانی پیانبری را می دهم که بعد از من می و نامش اشمد است ولی چون به ایشان ماجزه ها را آورد گفتند اینجا است آشکارا و چی کسی ظالم تر است از کسی که بر خدا دروغ بر بست در حالی که او به اسلام دعوت می شود آره خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند می خواهند که نور خدا را با دهنهای خود خاموش کنند اما خداوند نور خود را کامل کرده نیست، گرچه کافران نخوشنود شوند. اوست که پیانبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه ادیان غالب سازد، اگرچه مشککان ناخشنود شوند. ای مؤمنان آیا شما را به تجارت رهنمایی کنم که شما را از عذاب درناک دوزخ نجات دهد؟ با خدا و پیامبر او ایمان آورید در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنید این کار برای شما بهتر است اگر بدانید اگر چنان کنید گراهان شما را میامرزد و شما را به بهشت داخل می کند که در زیر درختان آنها جویبار های جریان دارد و در مسکن های پاکیزه در بهشت های جاودان و این پیروزی بزرگ است و نعمت دیگر را ارزانی می کند که آن را دوست می دارید یاری خدا و پیروزی نزدیکی را و مسلمانان را مجده بدید ای مؤمنان، یاوران خدا باشید طوری که عیسی پسر مریم و یاوران خود گفت در راه خدا یاوران من کی خواهد بود یاوران او گفتند مایم ما یاوران راه خداوند پس دسته از بنی اسرائیل ایمان آوردند و دسته دیگر کافر شدند پس مؤمنان را در برابر دشمنان ایشان تقویت کردیم و در آخر کار پیروز گردیدند.